داریم از اللهم و رحم نا رحمتی که شد که راجع به که مالکم محقق <تصفيق> عراقی قبل از در بحث اصول عملی فرماند. یکیش فرق بین مسئله اصالات الهر و عقل احباهی که در رسول مطرح شده مخصم در قدما اهل سنت و شیعه مطرح کردن و بین اصالات البرائه ایشون فرمودن که فرقشون اینه که اون مسئله ناظر به حکم عقل واقع نظر از تعبد به این مسئله ناظر به حکم همون مسئله است به نظر به روایات و عدله شرعیه بل ازاب خب توضیح دادیم که اینطور نیست که ایشون فرمودن بعد فرمودن که بل انتامنته تراعد و تلازم بین المسالتین یعنی ممکن است کسی در اونجا اسالت الاباحه قائل بشه اما در ما حنافی برائت جاری نکنه یعنی بگه به حکم عقل ابا هست لطفی شارع گفته اختیار یا برعکس در اونجا اسالت الحرز با به اصطلاح غوه و با حیویتی حضر من منه.allah حالا آثار من بین آثار حضری. اونجا بگه که عقل گفته که اشیاء رو بنابر حضره لکن شاره اجازه داده. لذا تلازمی هم بین مسائلتین نیست. بله. برسم و فهین این فتوح هم و کفایت بحث فی احده ما انبه بحث فی الاخرات صادقون من اصله با اون توضیحاتی که ما دیروز عرض کردیم بعد اگر اونجوری که ما به ذهن آمده که اون ناظر به حکم واقعی باشه و این ناظر مقام شک باشه بحث از حزل و اباحه ناظر باشه به حکم اشیاء با عناوینها و ها و ما نحنفی ناظر باشه به حکم اشیاب به ما و مجهول شیء به ما و مجهول اون وقت مسئله تلازون بین مسئله تین خب واضحه دیگه کسی گفت واقعاً حلاله در صورت شک خب در مقام جه به طریق اولا حلاله اون قاعده هل اگر در جای جاری شد اساطر هل به طریق اولا جاری میشه و کزاله که اگر واقعاً قاعد شد مثلاً تصرف در انسان اگر بخواد کاری انجام به تصرف در ملک خدا صلاحی زود تصرف الله به ازن مالکش خب احتیاطی که طبیعتا در ما هم احتیاطه اینه که ایشون فرمین تلازمی بین مسئله نیست ظاهراً که تلازم خیلی واضحه رو این تصوری که شد خیلی مطلب واضحیه و خصوصاً که ایشون هم در براقه احتیاط هم عقلی دارن هم نقلی دارن فرصمون مسئله عقلی در اینجا هم عقلی و نقلی داره. علایه هادن به حسب ظاهر بین مسئله تلازم هست اگر قائل به حلیت واقعی شدیم دیگه احتیاجی به حلیت ظاهری نداریم قائل به حرمت واقعی شدیم نیازی به احتیاط نداریم احتیاط مال فکر شک اون میگه واقعا خود عمل حرام رو یه جایی احتیاط نید اصولاً احتیاط چون وظیفه عملی است در طول وصول به واقعه چون اونجا من به واقع رسیدیم دیگه احتیاط من ندارم و بنابراین یا باید قائل بشیم در اون مسئله کسانی که قائل به توقفن و اختیار مکردن وقت این مسئله رو مطرح رو کنم برایت و اشتحال یا دو تا نکته رو فارغ بین مسئله تین بدونیم نکته اول بگیم اون مسئله اساطال حل و اساطال حرزن نازر از به بهلیت و حرمت راست راج بهلیت و حرمت اما این اساط برای یا اساط احتیاط اعمه از حلیت و حرمته مثلا احکام وزئیرم میگید اگه شکه در شرطیت کردیم جزئیت کردیم شک در احکام وزئیر شک در خیار کردیم شک در تاینی و تخیری کردیم این اساط برای به عنوان آن مسئول سه و حرمت نیست مثلا یک می میدونیم هست نمیدونیم آیا تخیریست یا تاینی مثلا بگیم مثلا شک کردیم در این که این واجب اینیست یا کفاییست یک نفرم انجام بود هرچی غیر زائد هست معونه زائد هست با اساط برای ما درف میکنیم پس مناور این حالا با تفاصیلی که در حکم در وجوب اینی و تکلیفی است، بایا اصل جاری میشونه پس بگیم که این مسئله اساط البرایه ول اشتغال سع و دائرتن از هل و حرمت اونجا فقط نازره به هل و حر اینجا شک در جزئیات در شرطی الاحکام وضعی قیودی که در یک تکلیفی هست و قیودی که در یک عنوانی هست شک میکنیم که این قیدی داره نداره شک میکنیم که آیا به اصطلاح مثلا در رد سلام و جواب سلام بود قصد قربت کرد یا نه اساتل و اشتغال به این لحاظه یک دایره اوصعی داره از دایره حله حرمت همینطور هم هست این یک نکته و کزالة در همین دایره اوسعیت بگیم بحث براءت و اشتغال شامل مستحبات و مکروحات هم میشه چون خواهد آمد مثلا اگه ما شک در استحبابی چیزی کردیم اساتل برای جاری بشه با قول بعض از آیان همچنین که قاعده داریم قبه عقاب بلا بیان قاعده هم داریم قبه عتاب بلا بیان یکی عقاب بلا بیان یکی عتاب بلا بیان قاعده قبح عتاب بلا بیان هم داشته باشیم در کلمات مرحوم آشا محمدی حائری دیدم رسول الله پس ما قائل به قبه احساب بلا و هم داشته باشیم وقتی اون بحث اساتل یا اساتل دیگه تو مستحبات و اینا نمیاد پس بیایم بگیم دائره اساتل برای اوسع است از دایره بحث حظر و نکته دوم باز بگیم دائره اون بحث در جایی است که اصولاً در مسئله دلیلی نباشه که اون بگیم شارع گفته هر اما اگر دلیل آمد دلیل اجمال داشت ما بین وجوب و بین استحباب بین حرمت و بین جراحت بگیم که اون بحث اسالت اله و نمیاد اون اصلا جایی است که هیچ دلیل نباشه اما اگر دلیل آمد پس خودم واقعی آمده دیگه چون ناظر به حکم واقعی بود پس حکم واقعی رو شاره بیان کرده فقط نمیدونیم به نحوه کراحت یا حرمته خب دقت بکنه اینش بگیم اینجا جای اصالت البره هست یعنی بین اصالت البره هست اون قاعده این فرق بگذاریم یا اگر دلیل بود و معارز بود در دربابه بوشت خرگوش دلیل معارزه پس بگیم اون بحث قاعده هل جاری نمیشه چرا چون قاعده هل جایست که ما حکم اولی شیء رو به عنوانه ندانیم. چون در اینجا روایت آمده پس میتونیم که شاره حکم بیان کرده. الان بر ما ابهام از ناهی تاروز روایته. تو مقام اثبات بر ما ابهام پیدا شده. وقتی بگیم در اینجا قاعده هر جاری نمیشه اگر این قول رو گفتیم. اما اساط برای جاری میشه. این. البته هر دوش مقدماتش احتیاج به بحث داره. فقط من هدفم این بود که قابلیت طرح مسئله باشه نه اینکه حالا چون ممکن است کسی بگه اون اساتید الهل هست چه در فقدان نفس چه در تعارض نفس در اجمال نفس در همه اون قاعده جاری میشه فرقی نمیکنه خب کسی اونجا گفت دیگه این نکته دوم خود به خود منتفی خواهد شد پس بنابر این اینی که ایشان فرمودن در تلازمی ما بین مسئله نیز لا phi نفسه و اینه که بحث اسات البراه خصوص حل و حرمت نیست اوسه اداره اون بحث خصوص حل و حرمت کما این که اگر ما واقعاً گفتیم این حرامه یا واقعاً گفتیم حلال یا جای حکم ظاهری مخواد اسات برای ای اسات ال احتیاط شده. در امر سوم چون این هینوکاتی رو که میگیم برای توضیح مباحث و عملی خیلی مفیده ایشون میگن لا شبهت فیان نه اسات البراه فی مقام اصلون به رأس غیر مرتبتن بالاستثاب چون گاهی اوقات برای اثبات اصات البراعت به استصحاب تمام استثاب و عدم تکلیف مثلا قبل از بلوغ تکلیف نداشت که حالا هم بکنه بله غیر به بالاستثاب اون وقت این بحث پیش آمده که آیا استثاب با اصات البراعت یکیه یا نه ایشون میفهمن نه ولا به مسئله عدم و دلیل دلیل و عدم با اون مساله وقتی نداد. عمل اول فظاهران اولی رو توضیح نذ، این توضیح شما در اموال بحث حجیت زن عرض کردیم نکته فنیش اینه که ما در اون لحاظی که کردیم در اصول هست، گاهی اوقات که در یک شیء شک می‌کنیم، خودش در نظر می‌گیریم. کاری با حالت هاش نداریم، اصلا نگاه نمی‌کنیم. میگیم خودش. اون وقت اینجا ادعا میشه که خودش در نظر بگیریم اصل براءته. حالا سابقا چی بوده چی نبوده تا آرست پیدا کرده نکرده اما خودش رو در نظر بگیریم لذا در اینجا ما میگیم براید شک شکل اما در استثاب یک تنزیله با این فهم میکنه اون تنزیل اینه که میگه من تکلیف نداشتم یقینم حالا هم که شکل دارن تکلیف ندارن اون تکلیف نداشتم رو دقیق کردین در استثاب یک عدم تکلیف رو بینه، اون عدم تکلیف رو میخواد استمرار بده لذا این بحث پیش میاد که آیا صلاحیت داری یا نداره اما در ما چیزی رو بینه. میگه من ابتداعا شک دارم نمیدارم چی این تکلیفی دارم یا نه اصل اولی براعزه دقیق کردین پس در ها یک تنظیم مثل همین بحثی که در بحث حجیت بود چون میگفتن اگر شک بکنیم در حجیت مثلا خبر واحد استصحاب بکنیم عدم حجیت شیخ هم جواب داد اونجا توضیح داره. اشکال شیخ این بود که شما در استصحاب باید حالت صابر ببینید که عدم حجیت بوده این عدم حجیت بعد از شک در زمان فعلی هم در زمان لاحق به حساب بکشینش اما ما نیاز به این کار نداریم خوب دقت بکنیم ما توی ادم و حجیت نیاز همین که شک در حجیت بکنیم نموخوهد ادم و حجیته حجیت بکشیم تنظیل نموخوهد بکنیم همین که شما شک بکنیم در حجیت به مجرد شک که در حجیت ادم و حجیته اگر اثری باف شد به مجرد شک دیگه نیاز نداره که شما حالت سابقه رو بکشیم چه نیازی داره شما بیرین حالت سابقه رو بکشیم بگیین سابقن مثلا خبر حجت نبود فتواه فقی حجت نبود شک میکنیم که شاره اونو حجت قرار داریم میگه احتیاجی این نداریم شما چون شما یه قایل اغلایی داریم شک در حجیت مسابقه است مسابقه است با عدم حجید. وقتی یک اثر بر مجرد شک بار میشه نیاز به تنزیل نیست اصلا احجای تنزیل نیست بیاییم شما حالت سابقه ببینید اون حالت سابقه رو بیارین بعد بگین ادم و حجیت. این مثل اولوما اکل از قفاست اصلا نمیخواد این کار رو بکنیم بلکه به تعبیر اینها اصلا جای این کار نیست چون ما همین که شکر کردیم ادم و حجیت میام. چون نیاز داریم تنظیم بکنیم اینجا هم مرحوم آی عراقی نظرشون اینه که بر... به مجرد اینکه که شکر در حرمت براعت میاد نیاز نداره که شما بگیین سابقا تکلیف نداشتم حالا هم ندارم پس جایزه نه همین که شک بکنید ولی ازا یک قاعده شده بین آقایان از البته ارز کنیم من پس تو شیخ در اونجا داره که هر اصلی که به مجرد شک بار بشه خوب داره. بحث قانونی هم از بحث لطیفی هم از هر اصلی که به مجرد شک بار بشه نیاز به استثاب نداره شنا در ها با تنزیل بکنین چه دایی به تنزیل داریم هر اصل وقت در ما نحنوهی براعت براعت به مجرد شک جاره میشه نیاز نداریم شما از تا عدم تکلیفی بیاریم بعد آن چه نیازی به این کار داریم هر اصری که به مجرد شک بار میشه شما نیاز ندارین که بریم دنبال تنزیل همین که شک کردیم اصنر میان نیاز نداریم که دنبال تنزیل بریم پس بنابر این اینکه فرد با استصحاب و اما برای جایی که امکان تنزیل باشه اصلا نوبت برائت نمی‌رسه نه نه اصلا نوبت به تنزیل اون با تصرف بکنه میگه تا شکردی برائت تا کردی عدم حجیت شما باید شک بکنید بعد به سابقا حجهت نبوده شک در جعل حجیت بکنید اون عدم حجیت میگه احتیاج به این کار نداره شما بله یه دفعه اثر مسئله فرض طهارت مثلا نجاست ملکیت این تا به اونجا ذکری ملکیت که اثبات نمیشه میگم مثلا پارسال تو یک سال قبل 6 ماه قبلش مالک بود الان مالک اونجا درسته اونجا استصحاب بنا اما در جایی که معیارش اینه عرض کردم معیارش اینه هر اثری در جایی بار بشه به شک به مجرد شک نیاز در اونجا اگه فرض کن استصحاب اونجا بشه نیازی به استصحاب نیست جای استصحاب نیست چون با مجرد شک اون اصل بال میشه برای چی میخواد انتصاب بگیشونه انتصاب داره. و اما عدم و ارتباط ها به مسئله عدم و دلیل دلیل عدم فلعن المهم فی تلک مسئله در مسئله عدم و دلیل انما ها نفی حکم الواقعی فی نفس الام یعنی شما میگین ما دلیلی در اینجا نداریم پس در واقع این حکم نیست خیر بله ولو معلقت و عدم و کونی فعلی هست در نفس الان هست ولو با قطع به این که عدم و کونی فعلی با این که در فعلی نیست به نحوه نیستت چون به نحوه نیستت با عقوبت علا مخالفته این ما توضیح دادیم که عقوبت و ثواب و جزا مترتب میشه بر حکم فعلی این یستت به این ترتب اون حکم فعلی که سواب و جز... و بر براون مترتب میشه به خلاف ما نحن بحث مقام براه هست فا این المهم فیه لدل قائل بالبراه هست انما ها نفیه حکم فعلی ظاهران و نفی المعاخذه علی مخالف مخالفت واد باشه بچه ها شد مخالفت مالا طریق الى المکلف العلم به لا او به حسب واقع و نفس الامر کماها و ظاهران خودشون اعلم به ما افاده رحمه الله اصولا ببینید دقت بکنید وقتی که در جایی صحبت دلیل میشه دلیل طریق شما به واقعه اگر میاد میگه شما دلیل نداریم طریق ندارین طبیعتا چی جایی نمیتونه بگه مراد نفی حکم واقعی است بگه من راه ندارم اگه اون نیست خیلی عجیب از ایشون چطورشون هم در نکته خود دقت کنید نکتر ماهی تکرار میکنیم برای اینکه در بحث اصول عملی همیشه مفروض ذهنیتون رو حساب بکنیم و مطلوب رو حساب بکنیم مفروض ذهنی شما دلیل نداریم یعنی طریق نداریم ایشون میگه که این در واقع نیست این چه حرفیه انسان طریق نداره در واقع هست خیلی عجیب از ایشان این به خاطر این نکته وقتی هم اعتراف کتاب‌های قدیم و سینه الهیات المسترشیدی برای اگر, اگر بخونید و کتاب‌های دیگرشون میام دارن مقداری ماها بعد این اصول متأخر ما که قبل از شیخ انصاریس اینا توی زیاده خیلی یک اصولی رو آوردن این از معارض وای یک چیزای کلامی واقعا شاخ در میاره باز الحمدلله از بعد از شیخ مقصم باز بعتر خیلی از اون اصول کلا حذف شده در حوزه های ما مطرح نیست اینا بر اثر اینکه هر چی تا مجادله یک اصل رو درست می‌کردیم خب این حساب کتاب و اصول از دست در رفت و ما اصلا این حسول با حساب کتاب داشته باشه اصل حساب و کتابش اینه شما داده ها و مفروض های ذهنی با واقع نیست که اصول مفروض های ذهنیتون رو به حساب بکنی بر اساس مفروض های ذهنیتون شما به اصطلاح مفروض رو هم بیان بکنی این که میگه عدم دلیل یعنی مفروض ذهنیه من این که دلیل ندارم خیلی دلیل این خیل چی میخوای اصفاز این نیست در واقع کجای نیست در واقع دلیل یعنی طریق من دقیق بکن تحلیل بکنی من ترجمه از آزیا شد مقرر خود رو سمیستشن شادم واقعا اما مشکل قبلی که اصول منقه نبید این مشکل ما هیلی مقدمات این که این اصول خوب منقه باشه در زمین این بحثات خیلی لطایف به اصول منقه شد اذا يا وقتی مفروض شما داده ذهنی شما اینه که دلیل من ندارم خوب دقت بکنید دلیل من ندارم اصفاد میکنه واقع نیست نه در امور واقعی مثلا من دلیل ندارم که فلانیم مثلا بچه دار شده چند نفر سوال کردم گفتن خبر ندارید خب من این معناش اینه که این در واقع بچه نداره خب میشه اصفاد نه در امور حقیقی و نه در امور اعتباری بله این رو ایده ای از اهل سن شون از ازیام اشتباه فرمازند از اهل سنت مثلا شدیدشون ابن هست چون زیاد تمسک میکنه در هر مسئله ای که در قرآن نیست در سنت هم نیست موردش از سنت همونطور که چند بار عرض کردیم حدس ناسقه تن انسقه اون روایتی که ال روایت علت یربی واسقه تن رسول الله این موردش از سنته اگر در... چون تمسک میکنه ما فرث نافل کتاب مل شی تمسک بین آیه میکنه میگه پس تنابراین اگر در قرآن نبود در مارباه و سقه انسقه ان رسول الله نبود پس نیست در واقع نیست شاید ایشون مرموازی و نظرشون به کلام اونها هست ما این شده توضیحی خواهیم داد اده زیادی شده از اصولین قدیمشی هم همینطور بوده اینا اساط البراره اماره میدونستن و رضا تا آرز باره باید فرض میکردن این در کلمات اهل سنت هست زواهر بعض از عبارات قدمای ما مثل ابن ادریس هست لیکن و بعدها هم که آمد دیگه رسما تو اصول من و این منشأ شد که اخباری ها حمله معروفشون رو شروع کردن که آقا ما این همه روایت داریم که احکام الهی از حضرت محلی ساموز و موجوده حالا شما دقیق پیدا نکردین. در قرآن نیست در روایت نیست این حکم واقعیش پیش امام موجوده این مبانی ولذا آمدن گفتن این مبانی در و قلعان اساط الورا یا ادم دلیل مطابق است ما مبانی اهل سنت مبانی ما نمیخوره این اشکال معروف اخواری ها ولذا بعدها حضرات اصولین ما مثل وحیل بهبانی زاویه بحث عوض کردن گفتن ما مرادمون از نفی حکم ظاهریست نه واقعی از این یه تحولی بود که در اصول شیعه پیدا شد من نمیدون رو برموازی ها چی شده خوب دقت. از کسی که این در این نکته عدم و دلیل و عدم با برای هیچ فرق نمیکنه اونم اساطور برایه می نکتهش، پس قدما و اهل سنت و مثال های بارزه چون اهل سنت خب درجات هم درجات دارن اون شدیدش ابنه هست ابنه هست شدت حتی اگر روایتی باشه که بعضی از بزرگانشون قبول کردن ایشون قبول نکرده یا به عکس بزرگان قبول نکردن ایشون قبول کرده چون دو طرف داره. چون ابن هرز در آلم احل سنت و این که از علمان است از این مذاهب عربعنیست است. ازالک او یک امام در خنده خودشون واقعا فوقراده است انصافم این کتاب با این که دورم بوده از اوساط اندلس بوده این کتاب محلاش کتاب فسر کتاب هایی که داره خیلی و خیلی هم کتاب داره عجیب اینه که از عجایب کار هم کتاب زیاد داره هم مسأله البته محلاش یک نواخ نیست غنی اوقا در بعضی از مسائل واقعا قواقا میکنه شاید من فکر میکنم هیچکدونه از سنی و اون قشنگی تمام روایات و محتملات و بررسی ها رو انجام در خیلی از جام رد میکنه زود رد میکنه معلومه درست کار نکرده علای هالند ایشون رو این جهت خیلی اصرار داره نمی ادول علیه کتاب و سنت دیگه ایشون چون غالب قیاس و اجماع نیست به شدت هم با این دوتا مخالف میشه ما شیعها. نه اجمار رو قبول داره، نا قياس رو قبول داره. اگر کتاب و سنت نبود، صاف میرو اساتل برائت. و میگه این حکم نیست، مثلا میگه نیست. اینو حکم الله وجود نداره. چون نظر کتاب موجود در سنت. شاید مذهوم از نظرشون ادم و مگر رو شاید شد مثلا بعضی از اصولین اهل که اینجوری ان شاد دیدن. لكن اونها بحث و الدلایل برا اجاره میکنن، فهم نمی کنه. اساتل برائت با ادم الدلایل، عدم یکی یکیه. بعضی یا قائلن در هر دو مفید و حکم واقعی یعنی در واقع نیست براعت هست در واقع بعضی ها به اصطلاح مثل ماها بعدها در هر دو گفتن در ظاهر نیست چون عدم و دلیل دلیل و عدم ظاهره نه واقعا واقعا که من عدم که اصلا شما داده زهنیتون عدم و دلیله دلیل طریق شماست شما میگی من طریق ندارم اگه طریق ندارم پس نیست یه میشی چون میگی من به واقع طریق ندارم. وقتی تاریخ نداری چطور میگه نیست واقعا اصلا معنا نداره. ارسونم که مقدماتم مفروضه که این نداشتم ندیدی، حاکی از اینه که نگفته، نگفتم یعنی نبوده. براءت من میگم. نفی واقعی است. براءت من میگم. میگه براءت از من همین. علایوهان دقت بفهمید کسانی که قائل هستند در براءت مثل ادیت خودم های خود ما و شاید مشهور اهل سنت که برایت مفید واقعه یعنی در واقع نیست، اون علامت دلیل هم همین معناش، برایت هم همین معناش. کسانی که مثل متاخری نشی، بعد از ظهیر بهوانی، برایت اونای نفی دلیل، نفی هاکن ظاهران گرفتن، علامت دلیل دیلو، عدم ظاهران نه واقعاً فرق نمیکنه با هم بیفردن. فرقش این نیستیشون نوشتم. فرقش نکته ای دیگریه. از که از این نکته من کردم تکرار کردم. این آیون نیستی که این مطلب رو خوب جا برشون نیفتده که اصول چون لحاظه من چند روزه ای دارم صحبت میکنم شما میشی یک مطلب رو یک واقعیت رو لحاظه های مختلف بکنید اصالتون برای نظر اساسی رو خودشه یعنی ما مثلا منباب مثال در چیزی در شک کردیم دلیلی نبود شک کردیم بدون این که نظر به حالا اون دلیلی که اقامه شده چیه کار به اون نداره. نظر به خودش داره. میگه اینجا جای برای هست. اون دلیل دلیل ادم اون به جایه که نظر رو خودش بکنه نظر رو دلیل شکرد. راه شد. مثلا شما الان همینطوری گاهی میگید مثلا فلان چی در جامعه اینطور باشه یا مثلا فلان مطلب اینطوره طرف به شما نمیگه که این مطلب اینطور هست. میگه شما دلیل چیه. این قلها تو برهان نکنم این کنتم صادرین ما هم خیلی وقتا شما این مطلب از کجا می‌گی یعنی میرو پشتوانه اون زیربناهای فکری دو راه هست یک راه اینکه به خودش نگاه بکنید یه راه بریم رو زیربناهای فکری این که میرو روی زیربناهای فکری نتیجه چیه که اون از راه سبب وارسته یعنی میاد با شما مناقشه میکنه میگه این ادله‌ای که اقامه کردی کافی نیست رو ادله حساب میکنه این عزیز زاوی بلا فرق نمیکنه عدم دید الذیل الالعلم با اساس البراءه چون نکته فنی همین هست که عرض کردم نکته فنی این است که ادعای براءت شما یعنی نفی حکم واقعا میدونن گویا بهش میگن براءت یا میگن عدم الذی یعنی آمدن گفتن در اعتبارات قانونی اگر شما دلیل پیدا نکردین پس واقعا حکمین اساس البراءه هم همینطوره اذه ما اون گفت اگه شما دقیقی پیدا نکردین ظاهرا حکم نیست نه واقعا از البار همینی تو چاره ندید به هر حالی این متایی که ایشون فرمودن که برای موازنه نشو ال را رابع در مطلب چهارم که ایشون با عنوان مقدمه آوردن بحث لطیفی رو مطرح کردن که به اصطلاح ماها غالبا این بحث از زمان شیخ به این صورت شکل و شمایل به خودش پیدا کرد از زمان شیخ انصاری که حتی معروف میگن شیخ میفرموده که اگر ملا محمد امین استرابادی زنده بود و رسائل منه میخون قاعده براعتی شد ببینید بحثی رو که مرحوم ملا محمد امین استرابادی در مقابل براعت مطرح کرد این بود که قاعده دفظر محتمل انظر عقلی جالی میشه و روایات وجوب احتیاط بعدها مرحوم وحید بهوانی که آمد در مقابل جواب قاعده قبه عقاب بلا بیان رو گفت جاری میشه نه قاضی دفع ضرر محتمل و اگر قاعده قبه عقاب بلا بیان جاری شد حاکم و دفع ضرر محتمل چون zarar دنیایی که محتمل zarar اخرویام به قاعده قبه عقاب بلا بیان برداشته میشه بعد از ظاهیره بهونه خایل های بحث بین دو طرف گر شد که آیا در باب شوباد تحریمی مثلا قاعده قبه عقاب بلا بیان جاری میشه که اصولی ها میگن یا به دفع ضرر محتمل جاری میشه که اخباری میگن ذهنیت این بود که اینا با هم مخالف در کبرا هستن ذهنیت این بود به این معنا که این میگفت قبح عقاب بلا بیان در اینجا جاری میشه اون گفت اصلا قبح عقاب بلا بیان جاری نمیشه وجوب دفع ضرر محتمل نه عقل شده من چون در اینجا چون خیلی میدون مبنای من این نیست که یعنی چی گفت چی گفت اخباری چی گفت اصولی چی گفت علایها نه عقل شده عرض کردم دیدم خیلی از منابع مهم نیست که مرحوم شیخ میفرموده که اگر ملا محمد امین استرابادی بود ایمان می‌ورد به حرفم مرحوم شیخ طرح بحث رو عوض کرد مرحوم شیخ گفت که اختلافی بین اخباری و اصولی در این دو قاعده نیست این قبه قابل بیان یا دفع ذره محتمل برای روایات اختیار اختلافی نیست چرا چون من هون شیخ میگه هر دو طرف قبول دارم قبول دارم قبول دارم. این عمل کلام اخباری ها میگن روایاتی که میگه احتیاط واجبه یک نوع بیانه این نقطه این شد یعنی مثلا شارع مقدس اگر مخواد به شما بیان بکنه که گوشت خرگوش حرامه با مثال دو راه بیان داره شارع یک راه که بگه لحمالالال حرامه ایه یه راه دیگه هم داره بگه مشتبه رو اجتناب بکن یجب علیک الاجتناب اینم بیانه دیگه چه فرقی میکنه اینم یه نوع بیانه اگر گفت یجب الاجتناب عن المشتبه محتمل یعنی یجب علیک الاجتناب از له محض اینم یه نوع بیانه مرحوم شیخ نکته ای رو که در کلامش قرار داد ادله احتیاط رو جزو مصادیق بیان گرفت پس بنابراین ما با اخباری ها اختلاف نداریم چه اختلافی اختلافی در کبرا نداریم قبه اعراب بلا ما هم قائل اونام قائلند دفع ذره محتمل و, و وجود روایاتی که دلالت بر وجوب احتیاج میکنه ما هم قائلیم اونام قائلند روایات هر چی هست دیگه روایت به نظرم تو کتاب مرحوم شیخ هر را عاملی اگه حافظن فراموشش کرده باشه به شماره که خودش گذاشته نه در کتاب چاپ شده 67 تا روایت به نظرم 67 تا روایت ورده به عدد که دلالت بر وجوب احتیاط میکنن خیلی خوب ما با هم دیگه پس اون سر چیه اون سر این نیست که در مانع تنفی قاضی قپه عقاب بلا برنجاری میشه هم اخباری قائل هم اصولی اختلاف اون سر اینه اخباری میگه از این روایات در میاد که جعل احتیاط شده و احتیاط هم یک نحوه بیانه پس قاضی قپه عقاب بلا برنجاری نمیشه چون بیانه مرموم شیخ هم میگه بل راست میگه خوب قاعده خوب حقاب بلا بیان داریم لکن روایات دلات بر وجوب احتیاط نمی کنه روایات دلاته. این روایات یا موردش موارد علم اجمالی است که ما اونجاها علم این خلاصه جواب از 67 تا روایت خلاصه جواب این روایات یا موردش علم اجمالی است که خب ما هم به احتیاطیم یا مورد شوباط بدویث لسانش لسان وجوب نیست استهبابه ولزا اختیار حسن معلومه چه چند بار دادم بیاد لا روی بفی حسن اختیار عقلا نشد نه ما چند بار صادقانه گفتیم بعضی هم قائل این نه عقلیش قبول داریم نه شرعیش این حسن است دیگه معلومه شرطه توضیحش بعداً عرض می‌کنم اصلا خدمتتون که پس بنابراین این ما با آیان اخباری ها اختلاف نداری روشن شد اخباریا با ما هر دو قاعده قبه قابل جاری میده و ادله احتیاط روایات احتیاط تمام بشه بیانه اینم هم هر دو قبول داریم نکته ما در سقراط اون میگه از این روایات وجوب احتیاط در شبهات بدیه استفاده میشه. ما میگیم ما از این روایات استفاده نمیشه بله اگر از این روایات وجوب احتیاط در نمیاد داخل توی قاعده قابل بیان نیست و باید اجتناب بکنیم پس این البته این مطلب رو شیخ داره عدس الله نفسه توی رسائل متفرقات هم داره یک جمل داره متفرقات داره این مطلب بعدها جز مقدمات بحث در کتب بعدی قرار گرفت لذا ایشون مرحوم صاحب تقریب مرحوم محقق عراقی هم بعد از این که میگه که ما دوتا بعد ایشون میگه وحینه ازن به این توضیح برای هم به این وضوع ندفتن تمام نزا بین الاخباریم و الوسیم فی اصل صغرا و فی کون مورد مندر جن تحت کبرا قائل القب یا تحت قاضی وجود در ذره محتمل فکان هم الاخباری اثبات و اندراج هم اثبات اندراج مورد شبه تحت القاعدت ثانیه به دعوا وجود البيان علی تکلیف یعنی بیان داریم یا از جهت علم اجمالی, اجمالی اجمالی کلی به کل شریعت، یا من جهت اونا بیشتر جهت اخبار الاهتیاد به زم صلاحیت آل بیانیه راسته اونا میگن اخبار الاهتیاد کما انه همه الاسولی انکار آده هلجه و اثبات و عدم صلاحیت اخبار الاهتیاد للبیانیه ولی المنجزی للتکلیف خیلی خوب المشروع اما چون این اخبار دلالت نمی کنن خودش ام منجهت جهت به معارضه تا به مدل علل ترخیص یا چون معارزه خلاصه نکته بحث اینه پس بحث بین اخباری و اصولی بحث صغرویی است در این مسئله نه روشن شد پس این نکته ای که در کلام شیخ هست بر احتیاط هم یک نحو بیانه اخباری میگه روایات زیاد داریم که شما باید احتیاط بکنید پس بیان آمد قاضی قبه میگه این روایات یا دلالت نمیگه یا معارزه پس بیان پ... پس روایات احتياط لا تسلحین بیانیه و جای قاضی قبه بلاوجه این نکته اساسی کلام مرحوم شیخ و بعد از شیخ هم این تقریبا حوزه های ما الان حوزه های شیعه چه نجر چه قم چه دیگه متاثر به این کلامن یعنی این محیط عمومی حوزه های ما اینه آیا این بحث درست یا نه ظاهرا فکر نمی بحث تمام باشه با اینکه این بزرگان اصدار دارد توضیحاً ارزی نکنیم که این احتمالی که ایشون گفتن رو ما به بی یک بیان دیگر ارزیم که روشن بشه. احتمالاتی که در اینجا توی مسئله هست و باید بررسیبش در حقیق هست یه احتمال این که اصولی ها حالا من کامم که کتاب فلان بخونیم اصلا طرح مسئله کار به افراد نداریم ما این ترهی این مسئله رو کنیم که بیان که قاعده اولا یک نکته است که ما کران از کردیم قاعده قبه اقا بلا بیان در زرمحتمل حق و تاه اینجا زیاد به کار برده شده ظاهرم اولش قاعده در وجود زرم محتمل در زرمحتمل در بین متکلمین از قدیم بوده بین معتظل و عشای روشیه اما در اصول قبه اقا بلا بیان در همین در, در ما در عبارات ما از زمان وحید بهبانی راه شده باشه ما از کردیم این این هرسمو استله باقی قابل بیان نیستند. قاعده حق تا اندیم و قاعده خود زرعانی. تمام انوینه کلامی اصطلاحات کلامیز. درست مرادشون جهت اصولی است. لکن اصطلاحات کلامیز است استعمال اصطلاحات کلامی در اصول درست نیست. فردای توضیح بیشتری شده ازش. این نکته اول که بعد ازش می‌خوایم. نکته دوم که الان ازش فکر کنید. ما از خواهیم کدارات وقت گذاشته تموم شده یه دقیقه دوست دقیقه ما این فتره بحث, بحث بکنیم تا بعد انشاءالا توضیح ما باید ببینیم که با قول این آقا نالا قوه اقاب بلا بیان این در حقیقت میشه اینجور بحث کرد یک کسی بگه آقا بیان عبارت از اون دلیل است که متصدی خود اون عنوان بشه مثلا دلیل بیاد که لحمال ارنب حرامون این بیانه اما اگر دلی آمد که شما در مورد مشتبه احتیاط کنید این بیان نیست. یه تکلیف دیگری وجوب احتیاط صد تا روایت هم بیان. این بیان نیست. وجوب احتیاط طبیعتاً یک حکم ظاهری است. حکم ظاهری دارای ملاکات خودشه. لازم نیست بیان باشه. مثلا برای که روشن بشه بیانیتش کی خواهد بود که بگی احتیاط برای این که تو از اون واقع جدا بشید خب ممکنه احتیاط رو این نکته نباشه مثلا یکی از عدل احتیاط فتح الله مسته ترتان ببینیم فتق الله اینی که شارعه میاد جهل احتیاط میکنه نکته جهل احتیاط این است که انسان صفت رو داشته باشه <تصفيق> بیانیت احتیاط مبتنیست برای این که شارعه واقع رو دیده میخواد به هر نحوی شما رو به واقع دارست این میشه بیان احتمال داره که لحمه در واقع حرام باشه شما اشتناب بکنید که به اون حرام دارست خب احتمال داره صفت سانبی در نظر باشه <تصفح> و اتبالله مسته تو این نکته نداره به مسته اتبالله گفت نگفت که مثلا لحمه شاید صفت تقوا پیدا بشه. اصولا احکام ظاهریشون چون تابع علم و مقید محدوده به علم به خلافه اینا ملاکات خودشون دارن پس بنابراین حتی اگر قائل به وجوب احتیاط شدی پس من روایت احتیاط قبول کرده ممکن است یک اصولی بگه اونجا بیان نیست چون بیان پیش من اون روایت است که لحم لرنب حرامان این بیانه بیان پیش من اون روایت است که لحم لرنب حرامان اما اون روایت که میگه یک با علیکل احتیاط در مارد شبه این بیان نیست ای حکم یه حکمی دیگر یا مستقلی پس احتمال اول اح... حالا پس این وجوب احتیاط وجود وجوب احتیاط بگیریم با بیانیت بر لحمه ارنب هیچ رفتی بینشون نیست بیان باید اینطور باشه لحمه ارنب حرامو اما اگه وجوب احتیاط این بیان نیست اصلا. احتمال دوم اصلا رفتی هم نیست بینشون احتمال دوم ما بگیم بیان همونه که بگه لحمه ارنب حرامو لکن در رتبه طولی هم میتونه جعل احتیاط بکنه رتبه طولی یعنی اگر بیان پیدا نکردی در رتبه طولی میتونه شارع جعل احتیاط بکنه پس میاد یک ربتی بین اخبار احتیاط و بیانیت ایجاد میکنه روشن شد لیکن به نحوه طولی احتمال سوم بین احتیاط و بین همون تکلیف ارتباط پیدا بکنه به نحوه بناییت بنای... بنای... ارزن نه طولن. بگیم آقا ما بیانیت گاهی میگه لحمال مال حرامون گاهی هم میگه یجوالک الاحتیار اینا در عرض هم فرق نمیکنه کنه که میگه یا مرحوم شیخ که میگه بحث ما صغرویز نظرشون به احتمال سومه <تصفح> نظر این بزرگوار اینی که از زمان شیخ انصاری تا زمان ما که الان هست در حضور روشن شد تحلیل فنیش اونا نظرشون به بچه سومه نه نمیشه آزی این مطلب رو لکن منهی صلای اشعری که بخوای اون ذهنیت اصولی ایشون رو تحلیل بکنی ایشون نظرش به اینه که اخبار وجوب احتیاج اگر تمام بشه این یسر اهل بیانیه یعنی بیان دو جوره ارز در ارز همان یا بگه لحمال مال حرامون یا بگی اجوال علی کل شیخ این جور طرح مسئله باشه شد. باشه چی شد؟ با این تقریبی که من عرض کردم شما میگید نه ما قبول اصلا تقریب قبول نتاریم بر فرزا موجوب احتیاط تمام بشه بیان همونی در مورد باشه اخبار احتیاط مطلب دیگریست به احتیاط نکته اصلا ربطی نداره یه حکم است، احکام ظاهری ملاکاتو خودشو دارن اصلا ربطی به حکام واقعی ندارن مراد ما از قاعده قبه اقاب بلا بیان یعنی بیان بر حکم واقعی اگر روایت اومد که در مورد شبهه اجتناب بگیم بیانیت نمی‌سازه، یک صفتیه، صفت سفتی احتیاط خوبه. این یک صفتیه برای انسان نسبت به دین اختیار داشته باشه. ربتی به بیانیت نداره، یه حکم دیگریه مستقله پس ما در اینجا در مسئله لحمه αρنب معتقدیم که حلاله به خاطر اینکه بیان نداره، اما در عین حال یک سفتی هم شاره دوست، ربطی هم رب به لحم نداره که ما در زدگی اون تا حد المقدور مثلا تقوی داشته باشید یا به با علمه حق و طاعت داشته باشید پس این که دقت بفرمایید در حقیقت اینطور نیست که آزیا مسلم گرفتن که بحث سغربیه اگر ما تصویر اول و دوم رو بگیم بحث کبرویه اگر احتمال سوم رو بگیم بحث سغربیه پس ایشون در ذهنیتش یک تحلیل روشن شد من همیشه ارز میکنم مسائل و تحلیل و اصولی و قانونی بد این سر شما اخبار احتیاط رو به احتیاط رو از چه جنبه نگاه میکنید؟ میگید چون احتیاط بکن برای اینکه که به واقع برسید به... به واقع لحنه هر آزیان که جعل احکام ظاهری به خاطر حفاظ برواقع این حفاظ برواقع اینجور فهمیده ایشون بیانیت مثلا فهمیده ما ممکن است بگیم نه جعل احکام ظاهری حفاظ برواقع نیست خودش یک صفتیه یک ای که انسان در مقابل خدا مطیع باشه رو در محتملات این حساب دیگریه یه تکلیف دیگه‌ست پس این تکلیف اگه انسان مخالفتش کرد مثلا جزو گنوه ذنوب صغائر هست اون یکی کبائر باشه پس این آثاری هم در فرق بینش باشه خوب دقت بکن پس در ذهنیت شیخ و وازیو بحث کردم من الان یکی دیگه من چون الان کتاب میشونه میخونیم از زمان شیخ نزدیک 200 سال تو حوزه‌های ما الان این رسم شده که اختلاف ما با اخباری ها است اگر بخوایم این بحث و تحلیل بکنیم این نکتهش اینه که ایشون خیلی وقت دیگه از رفتاره شدیم ایشون قدس الله نفسه بیانیت رو دو مساق برش قائله یکی خود مورد یکی هم جله اختیار جعل وجوب احتیاطو در عرض بیانیت مورد می دونه. لکن اصل این مطلب اصل شوشن نیست ممکن است ربطی بهش نداشته باشه تصویری کردن از کردن خدمتون و ممکن است طولی بدانیم نه ارزی. بگیم در اینجا ما قاعده قبعه قابلا بیان جاری میشه، چون روایت بر حرمت لحمه هر نداریم لیکن یک حکم سانوی بعد از این مرحله که ما به واقع نرسیدیم و بر یه حکم ساوی شاره قرار طولشه اما در اونجا میگه نه بیان یا و یا جعل احتیاده پس شاره بیان داده فرقش این شد آ تصویرش اینه تصویر قانونیش اینه و کدامیکی درسته فرداینشانله وصلله الله